اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و اذا سمعوا ما و چون آیاتی تفيض من الدمع من يقولون را که بر پيام بر نازل شده بشنوند چشمهاي آنها را میبینی که اشك ریزان ميشود به خاطر حقیقتی که در اند و میگویند گویند را ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا و نطمع یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین چرا به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم. در حالی که آرزو دارین پروردگار من ما را در زمری صالحان در آورد فأثابهم الله بما قالو جنات تجری من الانهار خالدین پس خداوند به خاطر این سخن که گفتند به آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختان آن نرها است و جاودانه در آن خواهند ماند، و این است جزای نیکوکاران و الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئک اصحاب الجحیم فکسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخ‌اند یا ایوها الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیز ایرا خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید همانا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد و کل رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون و از چیزهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید. و از خداوندی که به او ایمان دارید بترسید لا یؤاخذکم الله باللغوی فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم لعلكم خداوند شما را به خاطر سوگند های لغبتان معاخذ نمی کند ولی شما را به خاطر سوگند هایی که از روی قصد محکم کرده اید معاخذ می کند پس کفاری آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانواده خود می خورانید. یا لباس پوشانید آنها را و یا آزاد کردن یک برده پس اگر کسی نیابد سه روز روزه بگیرد این کفاری سوگند های شماست هرگاه که سوگند یاد کردید و سوگندهای های خود را حفظ کنید و نشکنید این چون این خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند باشد که شکر گذارید يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان است، پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید.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 همانا شیطان میخواهد با شراب و قمار در میان شما ادابت و کینی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما خودداری خواهید کرد؟ و اطیع الله و اطیع الرسول و خدا را اطاعت کنید و نیز پیام بر را اطاعت کنید و از نافرمانی بر حضر باشید پس اگر روی گرداندید بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّتَّقَوْ ثم وَآمَنُوا ثُمَّتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بر کسانی که و کارهای شایسته انجام دادهاند گناهی در آنچه خورده اند نیست. اگر پرهیز کاری کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند، سپس پرهیز کاری کنند و ایمان آورند، سپس پرهیز کاری کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکو کاران را دوست می‌دارد. <سؤال> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتده بعد ذالک فله عذاب علیم ای کسانی که ایمان آورده اید خداوند شما را به چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن میرسد آزمایش میکند تا خداوند معلوم بدارد چه کسی در نهان از او میترسد پس هرکس بعد از آن تجاوز کند رایش عذاب درد ناگی خواهد بود یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم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 هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ای کسانی که ایمان آورده اید در حال احرام شکار را نکشید و هر کس از شما به عمد آن را بکشد باید کفاری همانند آن از چهار پایان بدهد به شرطی که دو نفر عادل از شما برابر بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برساند یا به جای قربانی اطعام مساکین کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد خداوند از آنچه چه گذشته در گذشت درگذشت و هر کس که به این گناه باز گردد خدا از او انتقام میگیرد و خداوند نیرومند و انتقام گیر است. لکم صید البحر و طعامه متاع لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البری مادمتم حرما و اتقو الله الذی ایلیه تحشرون شکار دریا و تعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاروانیان بهرعی باشد و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید بر شما حرام است و از خداوندی که که سوی او محشور می شوید بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلائد ذلک لتعلموا ال ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء علیم خداوند کعبه و ماه حرام و قربانی بینشان و قربانی نشاندار را وسیله ای برای اوستواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد این گونه احکام برای این است که بدانید به تحقیق خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است می داند و مسلما خداوند به هر چیز داناست اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحیم. بدانید که خداوند سخت کیفر است و خداوند آمرزنده مهربان است ما علی الرسول إلا البلاغ والله یعلم ما تبدون وما تكتمون بر پیامبر وظیفه ای جز رسانیدن پیام الهی نیست و خداوند آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که پنهان میدارید میداند قل لا یستوی الخبیث و ولو اعجبک كثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون بگو ناپاک و پاک یکسان نیست و اگرچه کسرت ناپاک به شگفتی اندازد پس ای خردمندان از خدا بترسید تا رستگار شوید يا ایوها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشیاء این تبدلکم تسؤکم و این تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم عفا الله عنها والله غفور حليم از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهگین کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار می شود خداوند از آنها عفت کرده است و خداوند آموزنده بردبار است قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین براستی گروهی قبل از شما از آن سؤال کردند سپس بدان کافر شدند ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون خداوند هیچ گونه بهیره و نه و نه وسیله و نه را قرار نداده است ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشترشان در نمی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 و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیام بر بیایید گویند آنچه نیاکان من را بران یافت این ما را بس است آیا اگر نیاکان آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ يا ايها الذين امنوا عليكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينباكم بما كنتم تعملون اي مراقب خود باشید اگر شما هدایت یافته باشید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمیرساند، رساند بازگشت همه شما به سوی خداست آنگاه شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم اثنان ذو عدل من او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نشتري بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذا وَلَا, نكتم الله ولا نكتم الله انا لمن ای کسانی که ایمان اید چون مرگ یکی از شما فرارسد در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرد یا اگر مسافرت کردید و مسیبت مرگ به شما رسید و مسلمانی را نیافتید دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید و اگر هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به خداوند سگند بخورند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خیشان من باشند و شهادت خدا را کتمان نمی کنیم که در این صورت از گناه کاران خواهیم بود فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا وَمَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ پس اگر معلوم شد که آن دو مرتکب گناه خیانت شده اند و حق را کتمان نموده اند دو نفر از کسانی که ستم دیده اند و نسبت به میت اولا هستند جای آنها را خواهند گرفت آنگاه به خدا سوگند یاد کنند که گواهی ما از گواهی آن دو درست است و ما تجاوزی نکرده و اگر چنین کرده باشیم از ستم خواهیم بود ذلك ادنائن تؤمن بالشهادة على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين به آنکه گواهی را به گونه درستش ادا کنند نزدیکتر است و یا بترسند که بعد از سوگندهای ورسه سوگندهایشان رد شود و از خدا بترسید و گوش فرا دهید و بدانید که خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك أنت علام الغوب روزی که خداوند پیامبران را گرد آورد آنگاه بگوید در برابر دعوت حق چه پاسخی به شما داده شد گویند مارا علمی نیست بیگمان تو خود دانای رازهای نهانی اذ قال الله یا عیس بن مريم اذکر نعمتي عليك و علا والدتک اذ ایدتک بروح القدس اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس في المهد و کهلاه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 هنگامی را که خداوند به عیسی پسر مریم می‌فرماید، ای عیسی پسر مریم نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد آور زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم در گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی مانند شکل پرنده ای ساختی پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا میدادی و آنگاه که مردگان را به فرمان من زنده بیرون می آوردی و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم آنگاه که دلایل روشن برای آنها آوردی پس کسانی از آنها کافر شدند گفتند اینها جز جادوی آشکار چیزی دیگر نیست و این اوحیت الی الحواریین ان آمینو بی و برسولی قالو آمنا قالو آمنا و اشهد باننا مسلمون و بیاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم شده این اذ قال الحواریون یا عیس ابن مریم هل يستطيع ربك که ينزل علينا علینا الله و به یاد آور چون حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پروردگارت میتواند سفری از آسمان بر ما نازل کند عیسی در پاسخ گفت اگر مؤمن هستید از خدا بترسید قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علیها من الشاهدين گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای من آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفتهای و بر آن از گواهان باشیم قال عیسى ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عیدا تكون لنا عیدا لی اولنا و منك و آیتا منک و رزقنا خیر عیسی پسر مریم دعا کرد و گفت پروردگارا خداوندا از آسمان ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و از تو و به ما روزیده که تو بهترین روزی دهندگانی قال الله اینی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منکم فإنی اعذبه فإنی اعذبه خداوند دعای او را اجابت کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم اما هر یک از شما که بعد از آن کافر شود او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم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 ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك اینک انت علام الغیوب و بیاد بیاور که خداوند میفرماید ای ایسا پسر مریم آیا تو به مردم گفتی؟ که من و مادرم را به عنوان دو معبود به جای خدا انتخاب کنید عیسی گوید تو منزهی من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم اگر چون این سخنی را گفته باشم بیگمان تو میدانی تو از آنچه در زمین من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست نمیدانم یقینا تو خود دانای رازهای نهانی ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم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 و تو بر هر چیز گواهی این تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم <عذب <diplomat> <عذب <considerable> اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند و اگر آنها را بیامرزی تو نیرومند و <Mighty> حکیمی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 خداوند فرمود امروز روزی است که راستی راست راستگویان به آنها سود میبخشد برای آنها باغ‌هایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن است و تا ابد جاودانه در آن میمانند خداوند از آنها خشنود است و آنها از او خشنودند این رستگاری بزرگ است لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه چه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیز تواناست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ستایش برای خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید و ها و نور را پدید آورد و با این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خیش دیگری را برابر می دارند. هو الذي خلقكم من طين ثم قضا اجلا واجلا مسمنا عنده ثم انتم تمترون هو كسيست شما را از گل آفرید سپس مدتی را مقرر کرد و برای قیامت مدتی معین نزد اوست با این همه شک میکنید و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم وجهرکم ويعلم ما تكسبون. و اوست خداوند معبود در آسمان ها و در زمین نهان شما و آشکار شما را میداند و آنچه به دست میآورید میداند وما ما تأتيهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه رویگردان روی گردان می شوند. فقد کذبو بالحق لما جاءهم فسوخ یعطیهم انباع ما کانو بهی به راستی آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند پس بهزودی خبر خبر چیزهایی که به مسخری می به آنها خواهد رسید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 آیا ندیدند که پیش از آنها چقدر از ها را حلا کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنها قدرت و اقتدار داده بودیم که به شما چنان قدرت و اقتداری نداده و بار آنهای پی, در پی از آسمان بر آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها رودها را جاری ساختیم آنگاه آنان را به کیفر گناهانشان نابودشان کردیم و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين و اگر کتابی بر کاغذ بر تو نازل کنیم که آن را با دست های خود لمس کنند قطعاً کسانی که کافر شدند میگویند این جز جادویی آشکار نیست وقالوا لولا انزل علیه ملك ولو انزلنا ملكا لقضی الامر ثم لا ينظرون و گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده است تا او را تصدیق کند و اگر فرشته ای می فرستادیم قطع انکار به پایان می رسید سپس به آنها هیچ گونه مهلتی داده نمیشد و به هلاک می شدند. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون و اگر او را ای قرار میدادیم حتما وی را به صورت یک مرد در میآوردیم باز هم به گمان آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم همان گونه که آنها بر خود و دیگران مشتبه میسازند ولقد استهزیء بغسل من قبلک فحاق بالذین سخروا فحاق بالذین سخرو منهم ما كانوا به یستهزئون ای پیامبر به تحقیق پیامبران پیش از تو نیز مسخره شدند. پس سزای آنچه مسخرهاش میکردند بر سر کنندگان فرود آمد قل سیروا فی الارض ثم منظرو کیف عاقبت بگو در زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست که رحمت را بر خود مقرر داشته است. قطعا شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست گرد خواهد آورد. کسانی که به خیش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آبرند. وله له ما سکن في اللیل و النهار و هو السمیع العلیم و از آن اوست آنچه در شب و روز آرام گیرد و او شنوا داناست قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين آیا غیر خدا را ولی و یاور گیرم خدایی که پدید آورنده آسمان ها و زمین است، اوست که روزی میدهد و به او روزی نمیدهند. دهند بگو من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است. و فرمان یافته هم که از مشکان مش نباش قل اینی خاف إن عصیت ربی عذاب يوم عظیم بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین هر کس که در آن روز عذاب را از او بگردانند و به وی عذاب نرسد قطعا خداوند به او رحم نموده است و این پیروزی آشکار است و این یمسسک الله بضر فلا کاشی له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علا كل شیئ قدیر اگر خداوند بخواهد زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را دفت کند و اگر خیری به تو رساند پس او بر همه چیز تواناست و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر و اوس که بر بندگان خود مسلط و چیره است و او حکیم آگاه هست قل ایو شيء أكبر شهاده قل الله شهید بینی و وأوحى إليه هذا القرآن لأذركم به وَمَنْ بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل انما هو اله واحد بگو چه چیز در گواهی بزرگتر و برتر است بگو خداوند میان من و شما گواه است و این قرآن بر من وی شده تا شما و تمام کسانی را که به آنها میرسد با آن دهم. آیا به راستی شما گواهی میدهید که با خداوند معبودهای دیگری هستند بگو من گواهی نمیدهم بگو همانا او تنها معبود یگانه است و من از آنچه با او شریک قرار میدهید بیزارم <تصفيق> الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون کسانی <تصفيق> که به آنها کتاب دادیم به خوبی او را می شناسند همان گونه که فرزندان خود را میشناسند کسانی که به خیش زیان رسانده اند پس ایمان نمیآورند. ومن و من اظلم ممن استرا علی الله کذبا او کذب بایاته انه لا یفلح الظالمون و چه کسی تر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کند به راستی ستمکاران نخواهند شد و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکو ت نقول الذين اشراکن عین شووااککم الذيکن توم تظرمون و روزی که همهی آنها را گرد آوریم سپس به کسانی که شرگ وزیده اند میگویم که آنها را شریک خدا پند داشتید کجا هستند؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ آنگاه پاسخ و عذرشان جز این نباشد که گویند به خداوند پروردگار من ساگند که ما مشرک نبودیم انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون چگونه برخیشند دروغ و گفتند و آن دروغ هایی که ساخته بودند همه محو و نابود شد و من منهم من يستمع اليك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 هذا <تصفيق> و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا میدهند و ما بر دلهایشان پردهها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم. و اگر تمام ها را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا اینکه نزد تو آیند و با تو مجادله کنند کسانی که کافر شدند گویند این جز های پیشینیان نیست و هم ینهون عنه و عنه و اي يهلكون الا انفسهم وما یشعرون و آنها مردم را از پیروی او باز میدارند و خود نیز از او دور میشوند آنها جز خیشتن کسی را هلاک نمی کنند و نمیدانند ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا فقالو يا ليتنا نود ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنین و اگر آنها راهنگامی که در برابر آتش نگاه داشتند ببینی پس میگویند ای کاش باز گردانده می شدیم و آیات پروردگار را تکزیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعادو لما نهو عنه و اینهم نه چونه نیست بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می کردند برایشان آشکار شده و اگر باز گردانده شوند بی تردید به آنچه از آن نه شده بودند باز می و اینان دروغ گویانند و قالو این هی الا حیاتنا الدنیا و نحن بمبعوثین و گفتند هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد ولو ترا إذ وقفوا علی ربهم قال ألیس هذا بالحق قالوا بلا وربنا العذاب بما كنتم تكفرون و اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی می آیا این حق نیست گویند چرا قسم به پروردگارمان حق است می پس به سزای آنچه کفر که عذاب را بچشید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ما يزرون آنها هالك لقای پروردگار را تکذیب کردند اند زیان دیدند هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید گویند ای افسوس بر ما که در باری آن کوتاهی کردیم و با آنها بار گناهانشان را بر پشت های خود حمل می کنند چه بدباریست آنچه را حمل می کنند و حیات الدنیا الا لعب و له ولد الاخره خیر یتقون افلا تعقلون زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیدگارند بهتر است آیا نمی اندیشید؟ قد نعلم انه لیحزن کالذی یقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون یقینا <تصفيق> ما میدانیم که آنچه میگویند تو را غمگین میکند پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمی کنند بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار میکنند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 و به راستی پیام برانی پیش از تو تکذیب شدند، و در برابر تکذیب ها صبر کردند، و در این راه آزار دیدند، تا یاری ما به آنها رسید، و هیچ کس نمی تواند کلام خدا را تغییر دهد، و بیگمان اخبار پیام بران به تو رسیده است،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 فلا من و اگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است، پس اگر میتوانی نقبی در زمین یا نردهبانی به آسمان بجوی، آنگاه نشانی برای آنها بیاوری. و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد میآورد، پس هرگز از نادانان مباش. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون تنها کسانی دعوت تو را اجابت میکنند که گوش شنوای دارند و خداوند مردگان را در روز قیامت برمیانگیزد سپس به سوی او بازگردانده میشوند وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا چرا نشانی از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو بیگمان خداوند قادر است که نشان این نازل کند ولی بیشتر آنها نمی دانند و من فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه اِلَّا اُمَمُنْ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با و بال خود پرواز می کند مگر اینکه که امتها ایمانند شما هستند ما در کتاب هیچ چیز را فرو گذار نکردیم سپس به سوی پروردگارشان محشور می گردند وَالَّذِينَ بآیاتنا بِ آیَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمُنْ فِي من يشأ الله يضلله و من يشأ يجعله على صراط مستقیم و کسانی که آیات ما را تقذیب کردند کرولال هستند و در تاریکی های قرار دارند هر کس را خدا بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد او را به راه راست قرار خواهد داد قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون غير الله تدعون ان كنتم صادقين بگو اگر راست میگویید به من خبر دهید اگر عذاب خدا به سراغ شما آید یا قیامت بر شود، آیا غیر از خدا را می خانید؟ بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون ایلیه این شاء و تنسون ما تشرکون نه بلکه تنها او را می و اگر او بخواهد مشکلی را که برای آن او را خانده اید برطرف می سازد. و آنچرا شریک او قرار می دهید، فراموش خواهید کرد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون و ما به تحقیق به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیام برانی فرستادیم چون نافرمانی کردند پس آنها را به رنج و سختی ها گرفتار ساختیم تا زاری کنند فلولا از جاءهم بأسنا تبرعون ولیکن قصد قلوبهم ولكن قصد قلوبهم و لهم الشیطان ما كانوا یعملون پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردند بلکه دلهای آنها سخت شد و شیطان هر کاری که می در نظرشان آراست مَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا, حتى إذا فرحوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا مُبْلِسُونَ پس چون آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا وقتی که به آنچه داده شدند شاد گشتند ناگهان آنها را گرفتیم در این هنگام همه معیوس شدند فقط عدابر القوم الذين ظلموا و رب العالمین پس ریشه قومی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است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 به من خبر دهید اگر خداوند گوش شما و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر بزند کدام معبود جز خدا میتواند آنها را به شما بازگرداند ببین چگونه آیات را به شیوه های گوناگون بیان میکنیم سپس آنها روی میگردانند قل ارأیتكم ان أتاكم عذاب الله برتة او جهرة هل یهلك الا القوم الظالمون بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به سراغ شما بیاید آیا جز قوم ستمکاران نابود میشوند و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم پس هر کس که ایمان آورد و خیشتن را اصلاح کند نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین میشوند شوند. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا العذاب بما بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ و کسانی که آیات ما را تقذیب کردند به خاطر کفر و نافرمانیشان عذاب به آنان می رسد. قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَي قل هل يستوي الأعمى أفلا تتفكرون. بگو من نمی گویم خزاین خدا نزد من است، و غیب نمی و به شما نمی گویم من فرشته هستم جز از آن چه به من وح می شود پیروی نمی کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ چرانمیاندیشید. و انذار به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه لهم من ولي ولا شفیع لعلهم يتقون و با آن قرآن کسانی را که می ترسند به سوی پروردگارشان گرد آیند بینده زیرا که برایشان در آن روز دوست و شفیعی جز او نیست باشد که پرهیزگاری پیشه کنند ولا تطرد الذين الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وکسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنودی او را میخواهند از خود دور مکن نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها پس اگر آنها را ترد کنی از ستمکاران خواهی بود و کذالک فتم ما بعضا بی الله عليهم من الله و این چون این بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خدا از میان ما بر برانان منت نهاده است؟ آیا خداوند به سپاس گذاران داناتر نیست؟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 انه من عمل منكم سوءا ان بجاهله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آنها بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هر کس از شما از روی نادانی کار بدی مرتکب شود سپس بعد از آن توبه و درست کاری کند البته او آموزنده مهربان است و نفصل الالآیات ولی تستبین سبيل المجرمين. و این چونین آیات را به تفصیل بیان می‌کنیم و تا راه مجرمان و گناهکاران آشکار گردد قل اننی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع قد ضللت وما انا من المهتدین. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا میخوانید نهی شده ام بگو من از هوس های شما پیروینه نمیکنم که اگر چنین کنم قطعاً گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. قل إني على بينة من ربي و به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلی بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید و آنچه شما بدان شتاب دارید نزد من نیست حکم و فرمان تنها از آن خداست حق را بیان می کند و او بهترین جدا کننده است قل لو انعندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و و اعلم بالظالمین بگو اگر آنچه که شما به دانشتاب دارید از نزول عذاب نزد من بود بر شما نازل می کردم و کار میان من و شما به پایان می رسید و خداوند به ستم کاران داناتر است و عم... نده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا لا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. آنچه را در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه آن را میداند، و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر خشکی وجود دارد مگر این که در کتابی آشکار است الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثم ثم يبعثكم فيه ليقضاء جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون و کسی است که روح شما را در شب میگیرد و آنچه در روز کرده اید می داند. سپس شما را در آن روز از خواب برمیانگیزد تا موعد مقرر فرا رسد سپس بازگشت شما به سوی اوست آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد و هو القاهر فوق عباده و يرسل علیکم حفظتا حت. ائذا الموت توفته حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون و هو بربندگانش چی راست؟ و نگهبانانی از فرشتگان بر شما میفرستد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرارسد فرستادگان ما جانش را میگیرند و آنها كوتاهی نمیکنند ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم هو أسرع الحاسبین سپس به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می‌گردند، بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او زود شمار ترین حساب گران است قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية ان انجانا من هذه لنكونا من الشاکرين. بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و در یارهایی می بخشد او را با تضرع و زاری و در پنهانی می خانید و می گویید اگر ما را از این خطرات و بلاها رهایی بخشد، مسلما از شکر گزاران خواهیم بود. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِنْ ثم أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ بگو خداوند شما را از اینها و از هر اندوهی میرهاند، باز هم شما شرک میبرزید قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعد. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. بگو او قادر است بر آنکه عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان بر شما بفرستد یا شما را به صورت گروه گروه و پراکنده با هم بیامیزد و تعم جنگ و دو دستگی را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند بنگر چگونه آیات را گوناگون بیان کنیم تا آنان دریابند وکذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل قوم تو آن را تکذیب کردند در حالی که آن حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم لکل نبئ مستقر وسوف تعلمون هر خبری سرانجام و قرارگاهی دارد و به زودی خواهی دانست واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره و اِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما به بحث و گفتگو پردازند، از آنان روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین وما الذین یتقون من حسابهم من شیئن ولیکن ذکرا لعلهم یتقون و چیزی از حساب و گناه آنها بر عهدی پرهیزگاران نیست ولی برای پند دادن و یادآوری باشد شاید که پرهیزگاری پیشه کنند و الذین اتخذو دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذكر به ان تبسل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفیع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 لهم شراب من حمیم و عذاب بما کانو و کسانی را که آین خود را به بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است رها کن و با این قرآن اندرزشان بده تا مبادا کسی به کیفر آنچه کرده است از کردار بد و گناه گرفتار و هلاک شود و در قیامت جز خدا نیاوری دارند و نشفاعت کننده ای و چون این افرادی هر فدیعی را به جای خود بدهند از او پذیرفته نخواهد شد آنها کسانی هستند که به کیفر آنچه کرده اند گرفتار شده اند نوشابه ای از آب جوشیده برای آنهاست و عذاب دردناکی به خاطر این کفر میبرزیدند قل من دون الله ما ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا وَنُرَدُّ على أعقابنا بعد إذ وَالْعَذَابِ الله كالذي استهوته الشياطين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 آیا غیر از خدا چیزی را بخانیم که نما را سود می دهد و نزیان می رساند و به عقب برمیگردیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده است همچون کسی که شیطان او را با وسوسه در زمین گمراه کرده و سرگردان مانده است در حالی که او یارانی دارد او را به هدایت دعوت می کنند و میگویند به سوی ما بیا بگو به راستی هدایت خداوند هدایت واقعی است و به ما امر شده که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم و ان اقیموا الصلاة و وهو الذي اليه تحشرون و اینکه نماز را برپا دارید و از او بترسید وتنها اوست که به سویش مشهور میشوید او خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشهاده و هو الحکیم الخبیر و اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که میفرماید باش پس موجود می شود گفتار او حق است و روزی که در سور دمیده می شود فرمان روایی از آن اوست دانای پنهان و آشکار است و او حکیم آگاه است وإذ قال ابراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنی أراك وقومك فی ضلال مبین و به یاد آور هنگامی را كه ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بتها را به خدایی میگیری من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار می بینم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین و این چونین ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از یقین کنندگان باشد. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَ كَوْكَبَهُ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ پس هنگامی که تاریک یه شب او را پوشانید ستار ای دید گفت این پروردگار من است وچون غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم فلما رأ القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالين پس هنگامی که ماه را تابنده دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راه نمایی نکند مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود فلمارا الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ پس هنگامی که خورشید را درخشنده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است اما وقتی که غروب کرد گفت ای قوم من از آنچه برای خدا شریک قرار می‌دهید بیزارم اینی وجهت وجهه فطر السماوات حنیفا من المشرکین. به تحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را پدید آورد حق گرایم و حادجه قوم قال اتحادجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به الا یا كل شيء علما با وی به مجادله و ستیز پرداختند گفت آیا در باری خدا با من مجادله و ستیز میکنید در حالی که مرا هدایت کرده است و من از آنچه با او شریک قرار می دهید نمی ترسم مگر پروردگارم چیزی را بخواهد علم و دانش پروردگارم همه چیز را دربر گرفته است آیا پند نمی گیرید؟ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و چگونه از چیزی که شریک او قرار داده اید بترسم در حالی که شما نمی ترسید از آن چیزی را شریک خداوند قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است پس اگر می دانید کدام یک از این دو دسته به ایمنی شایسته تر است الَّذین آمَنُوا ولم ایمانهم بظلم الامن مهتدون آنان که ایمان آورده اند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایمینی از آن آنهاست و آنها هدایت شدگانند وتلك حجتنا آتينا إبراهیم على قومه نرفع درجاتمن نشاء إن ربك حكيم علیم وإنها حجت و دلایل ما بود كه به إبراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را بخواهیم بالا میبرین همانا پروردگار تو حکیم و داناست و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا ونوحا و هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون و کذالک نجزی المحسنین و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را هدایت کردیم و نوح رانیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون را هدایت کردیم و این چونین نیکوکاران را پاداش می دهیم و زکریه و یحیه و عیسی و الیاس کل من الصالحین زکریا و نیز و یحیا و ایسی و الیاس را هدایت نمودیم همه از صالحان بودند و اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین واسماعیل و یسع و یونس و, و لوط را هدایت کردیم و همه را بر جهانیان برتری دادیم و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و جتبیناهم و هدیناهم صراط مستقیم و نیز از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان برخی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم ذلک هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت میکند و اگر شرک می‌ورزیدند هر عاین آنچه را انجام داده بودند از اعمال که آنها نابود میشد اولئك الذین آتیناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بکافرین. آنها کسانی هستند که کتاب و حکمت و نبوت به آنان دادیم پس اگر این مشرکان به آن آیات قرآن کفر ورزند به تحقیق ما گروهی را بر آن میگماریم که نسبت به آن کافر نیستند أولئك الذین هد الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرا آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است پس بروش آنان اقتدا کن بگو من در برابر این رسالت پاداشی از شما نمی طلبم این رسالت و دعوت چیزی جز پند و یادآوری برای جهانیان نیست و ما قدر الله حق قدره اَذْ طَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ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 و آنها خداوند را آنگونه که شایسته است نشناخده اند که گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده است بگو کتابی را که موسی برای روشنایی و هدایت مردم آورد چه کسی نازل کرده است شما آن را به صورت نوشته های پراکنده قرار می دهید. قسمتی را آشکار و بسیاری را پنهان می کنید. و چیزهایی به شما آموزش داده شده که نه شما میدانستید و نه پدرانتان بگو خدا آن را نازل کرده است سپس آنها را با سخنان باطلشان رها کن تا سرگرم باشند و بازی کنند و هذا انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه مصدق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ و این قرآن کتابی است مبارک که که را پیش از آن از کتاب آسمانی آمده تصدیق می و تا احالی مکه و کسانی را که گرد آن ساکنند بین دهی و کسانی را که به آخرت ایمان دارند به آن نیز ایمان می‌آورند و آنان بر نمازهای خود محافظت می کنند.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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستكبرون و چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا بندد یا بگوید به من وحی شده است در حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم. و شگفت زده می شوی اگر ببینی هنگامی که این ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفتهاند و فرشتگان قبض روح دست ها را گشوده و به آنان میگویند جانهایتان را بیرون آورید امروز عذاب خفتباری در برابر آنچه ناحق بر خدا می گفتید به نسبت به آیات او تکبر ورزیدید، خواهید دید. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَمَا ما نرامعکم شفعاءکم الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ و در روز قیامت خداوند می فرماید همانا شما یکه و تنها به سوی ما آمدید همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سرتان رها کردید و شفیعانی را که شریک در امور خود میپنداشتی با شما نمیبینم مسلما میان شما بریده شده است و آنچه را خدایان و حامیان خود میپنداشتید از شما دور و گم شدهاند این الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحي ذلكم الله فأنا همانا خداوند شکافنده دانه و هسته است زنده را از مرد خارج میسازد و مرد را از زنده بیرون میآورد این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف میشوید؟ فالق الاصبح وجعل الليل سكنوا والشمس والقمر ذلك تقدیر العزیز العلیم او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب زمان قرار داده است این اندازه گیری خداوند توانای داناست وهو هوالذي جعل لكم نجوم لتهتدو بِها في ظلمات البر و قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون و او کسی است که سطحان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله انحرافیابید به تحقیق ما آیات و نشانهای خود را برای گروهی که میدانند بیان داشتیم و هو الذی انشأكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون و او کسیست که شما را از یک تن آفرید پس شما را قرارگاه و است ما آیات خود را برای گروهی که در میابند بیان نمودیم و هو الَّذِي انزل من السماء مَاً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 انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه این في ذالکم لآیات لقوم یؤمنون و او, او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد پس به وسیله آن گیاهان گوناگون از زمین بیرون آوردیم سپس از آن سبزه ها پدید آوردیم که از آن دانه های متراکم و از شکوفه نخل خوشههایی نزدیک به یک دیگر بیرون آوردیم و باغهایی از انگور و زیتون و انار میوههایی هایی که برخی شبیه هم و برخی بیش به هم هستند بیرون آوردیم هنگامی که میوه داد به میوه آن و به رسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه است برای گروهی که ایمان دارند و لله شرکاء الجن و خلقهم و له بنین و بنات بغیر علم يصفون. و تعالی و مشکان برای خدا شریک های از جن قرار دادند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و از روی نادانی برای خدا پسران و دخترانی ساختند خداوند بنزه و برتر است از آنچه توصیف می کنند. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم او پديداورنده آسمان ها و زمین است چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد در حالی که همسری ندارد و همه چیز را آفریده و او به هر چیز داناست. ذالکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء این است خداوند پروردگار شما هیچ معبودی به حق جز او نیست آفریننده همه چیز است پس او را بپرستید و او بر همه چیز نگهبان است لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير چشم ها او را در نمیابند و او چشم خارا در میابد و او باریک بین آگاه است قد جاء بصائر من ربكم فمن ابصرف فلنفسه و من عمیف وما وما انا علیکم بحفیر ای پیامبر به مشکین بگو دلائل و بینش هایی از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس کسی که ببیند به سود خود اوست و کسی که نابینا شود پس به زیان خود اوست و من مراقب و نگهبان شما نیستم و نصرف ال آیات ولیقولو درست ولنبینه نبینه لقوم یعلمون و این چون این آیات را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند درس خانده ای و ما این آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم. اتبع ما اوحی الیک من ربی لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو ویش شده پیروی کن هیچ معبودی به حق جز او نیست و از مشرکان روی بگردان ولو شاء الله ما اشرک و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوكيل و اگر خدا می شرک نمی برزیدند و ما تو را بر آنان نگهبان قرار نداده ایم و تو کار سازشان نیستی ولا لا تسبو الذین یدعون من دون الله فیاسبو الله عدوان بغیر علم کذالک زینا لکل ثم ربهم و کسانی را که مشکان به جای خدامی پرستند دشناام ندهید مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند این چونین برای هر امتی عملشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است پس آنها را از آنچه عمل میکردند آگاه میسازد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاعتهم لا لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله وما یشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون و آنها به سختترین هایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزهای برای آنان بیاید ان به آن ایمان میآورند بگو معجزات فقط نزد خداست و در اختیار من نیست و شما ای مؤمنان چه می دانید که هرگاه معجزهی هم بیاید ایمان نمیآورند؟ و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم يؤمنوا به اول مرت و نذرهم فی طغیانهم یعمهون دلهایشان و دیدگانشان را دگرگون می‌کنیم. کنیم همانگونی که از اول به آن ایمان نیاوردند و آنان را در سرکشیشان سرگردان رها میسازیم.